ما زیاران چشم یاری داشتیم خود قلط بودان چه ما پنداشتیم تازرخت دوستی برکی دهد حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم گفتگو آین درویشی نبود ورنبا تو ماجراها داشتیم شیوه چشمت فری به جنگ داشت ما غلط کردیم و سلح انگاشتین گلبون حسنت نخود شد دلفروز. فروز ما دم امت برو بگماشتین نکته ها رفت و شکایت کس نکرد جان به حرمت فرو نگزاشتین گفت خود دادی به ما دل آفظا ما محسل بر کسی نگماشتین